داریم از سعال بحث در تاریخ و به اصطلاح کیفیت دعاوی اشمام در تاریخ شیعه بود و از که اجماعاتی که در کلمات مثل احلام و نفسه آمده از تردیم که در کلمات هم دامه در اونجایی که فرق تفرید فرق خلاف هم دانه مثل تذکره دامه اجماع نصبه زیاد و مسادر این دامه اجماع رو که از کجایشون ادعا کردن و در چی هست یعنی هم موارد و هم مسادر در چه موردی ادعای اجماع کردن و از کجا گرفتن از با شوابیدی که موجوده در 18 درسته داشت قابل طبیعی باشه و بدون شک کاری رو که احلامه قدس الله نرسه شروع فرمودن بعدها در کلیه اتفرکالشی خصوصا در فرم و حتی خصوص تحصیل گذار بود این رو نمیشه این کار کرد. از شد که تحصیل مهمی که کلمات در این جهاز بود در دو قسمت اجماع خبر شبر واحد بود یعنی که عمل ازها و هر سیابی اولیه که همه قواییات ازها کلماتی که ازها و زعیم نرمه چون من بنده کردم به خون کجوی در میان فرق فهم سندن اجماع دوشادوش قیاسه اجماع و قیاس و اشتراع و استنبال دوشادوش همدیگه هستند و از فرقشونه که اجماع فتاهای ادهیت از علما که ابتدارن در مسئله که دلیل نداشتیم فتاهای همه علماء یک عصد و یک چیز که اگر فتوا رو پی نفسه نگاه بکنیم و رو مستند به احتمال خطا هست اما در اجماع احتمال خطا نیست میفهمشین در این اجماع و در این قیاس و نظام کردیم دو همیزن در زمان دومی در اسلام وارد شدن هم قیاس و هم اجماع اما در شیعه که در بغداد و در محابه مکتبه بوم یعنی شماعش اجماع وارد فقیل شیعه شد و شیعه شد. کلیه محارف دیم کلام و غیر کلام تا مسائل تاریخی اجماع که وارد شد دوشا دوش خبر بود فردش با هم دیگه اجماع روشا روش خبر واضح بود یعنی اگه این مؤامره برای این بود که خبر رو قبول نکنه اگه خبر قبول میکرد شما را قبول نمیکرد البته ایده مثلا ابو شیخ توسی سعی کردن به این بفهم سوء استفاده کنن. پس اجماع در طایفه اینطور در زمان اندامه در اثر گذشت زمان و خصوصا ورود ایده زیادی از مسائل جرخ تفریدی که ابتدا هم توسط شیخ در عالم ترجو پرک شده بود در زمان انلامه اجماع به دو قسم شده اجماعی که هم شدند و علیکم که ایشان باست هم خبر رو به چهار قسم تقسیم کرده که دو قسمش بیشتر مطمئن از ایشان بود سرید و هر خلاصه این تفکر بعد از انلامه قطعا موجی در تایفید یاد کرد بین موافق و مخالد. حالا چه کار بکنیم چه کار نکنیم و از طبقا ایجاد یک ای نوع تحقیق و تفتخص و برنسی انجام دارد که یعنی موجه شد که خود اندامه هم قیلی مرگاه اونها رو انجام داده میکنی خب وقتی میم با دفتت نگاه میکنیم کمبوده هایی بقیم مشاهده میکنیم اینطور نیست حالا من یک مخام بار برس کمبوده ها باشم مثلا تو ازده از مسائل شده ازده های اجمار شد در حالت که مدقی مسئله حساسا خودش ایف مسئله. شیخ توتی در محسوسی کن تا بیادن به اجماع خیلی مشکله مگرد یه این معنام بگیم که توجیه خوده که اصحاب متعرض نشدن اونایی که متعرض شدن اینه بودن اجماع به این معنام یعنی از قبل پدیگان تا زمان امدامه قبل نشد خب این برای کشف از خود ایمان بحث ما از آن کاشقیت هست خیلی مشکله دیم یه مسئله اگه ما تاریخش رو فهم میدیم از قرم پنجم آمده تا هم نهشون هیچ خوب ممکنه کاشه با قول ایمان باشه این مسئله یواشواش توی چیه آمد به هر حال مسئله بود لکیف بود ما اینجور منافشاتی در اجماع و یا منافشاتی در شهرت و در کلمات اتا مرسید و دیگران نمیدیم اما یواشواش بعد از اندامه آمده. یکیش مسئله خبر بود در باب خبر هم خود بشکلات گیگری بود. مثلا علامه از اخبار رو تغییر میکن مثلا چون از تحریف نهار کن تو مختلف میگه حدیث ضعیفه، لیکن این حدیث به این سنر با استثناء یه برزه مواردش در مصدرش در کتاب کافی هم موجوده. اونجا سنگه یعنی انسان احساس میکنه این عمل رو که ایشون شروع کردن هنوز کماکا با اون شرایط لازمش دقیق نبوده مثلا ما خود ما حسن من این رو قبول دارم علمای ما حتما این کار رو انجام دادن اما در میوشته های این ها نیست موقع که این کار شد مثلا بیان متن روایت واحده با مصدر رقایت با مصدر رقایت از کتاب و بعد تقیی و بعد تکیی ما کتاب میوخواست رقایت رقایت داریم از مصدر رقایت در این هستی کتاب با همه دیگه مثلا می ندیدیم بیان این کار بردیم شاید به حسب تفکر خودم رو بحث در اون مقداری که نخواد تنبه پیدا بشه برش کار بشه اولین بار با شهید ثانی شهید ثانی در دهم دهانویشان در کتاب درائیه که ایشون داره همچ شناسی که داره درائیت میگه خیلی از جمعاتی تنظیم آمده با کافی و مسابه دیگه این تنبه رو ما داری اولی با قطعاً حتی تو اصحاب بردی تو نوشته شما منرکز نیست و طبعا ما می میدونیم که نوشته منرکز کننده تمام شخصیت مهندف نیست شخصیه علمی مهندف نیست شاید مثل کوی یک خوش برست دردرستن نه دردرستن نه دقامیست دیگه آقه باشه یک دقامش میشه و هر حال این رو ما می میدینیم بعد از مردم شهیده سر به ما مرکون صاحب معالی را این کار را انجام داد که ارز کرده متاسفانه ناقصه تا کتاب حجه و فرد احادیث حسله و صحیلیه را بورده موصفه بزنگی کننه بورد که این حدیث در کافی این طوره در تحضیل این طوره این مقابله اینو سفر خب این کار باز خطران زوتر می شود به ذهن ما به ذهن بنده از تحضیل کنم این طوره یه اصحاب ما تلقی با حدیث بیشتر در اساس و بود نه اینکه حدیث شناسی به مای ما که خود شهید شریف حسابش بازدو لذا اگر اختلاف نسخه بود بیشتر بود تلقی اصحاب نگاه میکردن و با تلقی اصحاب مشکل به حل میکردم. به ذهنم اینطور میاد و لذا خود وسائلم همیز برای خود وسائلم یک کافی رو در مخابقه متون نداره خالباً میگه برمان سبو و نحوه و نحوه بر و نحوه و نحوه و نحوه و نحوه و نحوه و فرق میکنم نیست کنم خیلی جام مثل او گفته نحوه و گفته بازم فرق و ولی از آرست کردیم حد حدار و ساعت نقل 11 بوده حساب که این با مرموهای دروچیده یعنی قردش کار در من بوده آقای دروچیده در زنی می کنم باست کنم حدیث داشته کار فقط در مضمون و فرطوانه داشته باشی زیفون جامال احادیزی یکی از احداث جامال احادیز همین بود که دقیقا اختلاف مرشد و مزدکیه باشید من میخوام تقسیر رو این کارها خوب شروع شد از زمان علامه و طبعا با مشکلات نمرورو شد که توضیحاتش دادن دیگه نمخوام تکرار بکنم از زمان علامه بود انصافاً این منشه ادهی از شد یعنی این قرار جایی هست صحیح نیست این اشتباه هست نیست عمل کردن مشهور نکردن چه کار بکنیم معارضه کتاب بکنیم در بخصوص سر ترویج با غیر کتب اربعه هم یواش مارج نعده حتی کتاب‌های مسخور به اسلام و کتاب‌های دیگر فرض کنید که تفسیر علی بن ابی دیال بعضی در اینها هم روایت معارض هست اینا رو هم در تحریقات خودتون داخل کرد انصافا ادهی از این بزرگان در این میان بزرگی دارند. اینی که شما در مقاصر دیر مقاصر من چند واسه ذکر نه در, در مسائل مثلا این از برند دقان این طور شد این ما در همون حرکت اینید که شروع کرد حالا عبور و عبورشون بحث دیگه نیست تا از که فهمیم بحث قانه بر عرض یعنی کروختن انگول به کسی که میدونی شراب برسی ما داریم انگورو میکروشیم خب این در میان فتاوای احل سنن با آمان آنه برای اسم حرام بود این ادام فلسف تو از ها ما آمدن ام با من باید دارید دایی که شما ترکی برها این دو بزرگوان در اینجه از اون زمان این بخش شروع شد تا این آنه برای اسم یاد چون این آنه برگونات از انگور. این انگور رو بگیرده کنه، حسیل بکنه سوش فضا بکنه ممکنه این مددی طول بشته تا شراب که شواب خوبی هم نشه تخلال زمان داره یه واشاش اگر در فقط بکنی در تقیق ما به طور کنی مناخشاته چه در اشما چه در بوجهت خبر چه در این که این خبر واجه شده هست متن خبر چیه این مناخشات رو بیشتر از زمان محققه رو داری ایشون انصاف یکی از کسان خیلی در این جهت خوب غلقات مؤسره یعنی ایشون آمند مطالب رو دو مرتبه با خیلی کرد دیگه اون نیست که خلقیه و قبول باشه حالا یک مرتبه 700 سال قبول قبول بوده که آنه برقی اسمه حرام ایشون آمند گفتن نه میکنه نمی کنه و اگه بکنه لا میاد که در محل خودش لذا انصاف این عمل در شیعه خوبی بود و اختلاف مسائل شدیبی رو ایجاد کرد اینو باید قبول بکنید بعد از اندامه تقریبا دیگه مثل مثل کوفه و قوم نیست این آرا و خب بعضی هم بودن که ما ما برد قبل اندامه برای می کنم بعضی هستم ما بعد اندامه رو در نظر می گرفتن دیگه این تشبطت آرامه ای که مطرفت در خصوص اجماع نتیجه نهایی که بعدها متأخرین ما در بحث, بحث کبرانیش در این بود که ایمان به نقوه کاشف از گروه نه به نقوه لطف که شیط می فرمونند یا دخول که مرگوم سیر محتضا می فرمونن. این بحث ادار فیلکت هایی اواتف کن من بود که و مثل مرگوم نایینی و ادیر شبیده بیشتر تماییه به این پیدا کرده من رو آزیه دیگرم که اجماع باید اجماع علماء داریم یک باشه که این کاشفیت رو اصبار کرده و بیشترین نقطه در اجماع این میدونستن که مدرکی نباشه حتی محتمل مدرکی هم نباشه مسئله باشه که توش مدرک نیست محتمل مدرکی هم نیست و فواها اجماع کردن فتوا دادن با این شماعیش رو میده عصر مرحوم استاد هست تصانم رو کشف میدونن یا تصانم عقلی دربیر خرج اگر در مسئله تصروف عقلی بود به اجمال علامه و سید مرتضی و عضدالدوله می‌گفتن صوره کرانه رو اینها رو مرحوم استاد اعترانی میگفتن میفهمن که اگر درست به هر تصال پس این معنای اخیر معروف شد از اولی که اجماع مطرح شده تا حالا به شای تغییر دیگر نکرده خود اینا کرد تنظیم سه شای تغییر دیگر هم وشیم خود بنده ارس کردم برگریم و خداوندی هر دیگرم از حلیم. اگر ما از مجموعه اعضاد تلاشی از محسن در بیار این اما مجموعه اعضاد توانی باشه نه اینکه من ما نوییو عظیم میکنم مثلا سر ملت کردشون ما از همین نقطه است کردم و روشن شد این با گذشت زمان جنبه های تلقی زریف میشه جنبه های تبنی حقیق میشه در اجماعات علامه مقدار زیادی جنبه تبنی هست نه تلقی حالا اگر تلقی در یک فتره از زمان پس این تا زمان مثل بابه یا حتی سرور ما ملتظر بشیم دیگه هر چی بیرون طرف میاد ارمزهوره ابن نیلیس ابن میاد به اندازه علامه درن انصاف جنبه طلقی یعنی این خطا موستند به امام معصوم باشه اون طلقی طلقی فقط خودیش خود باها بر اساس قواعدی که داشتن فرض بر ذات انصاف های تبنی ضعیف میشه قوی میشه و جنبه طلقی ضعیف میشه شما از حدی مطلب وجدانی این مطلب نداره علاوه در یک مسئله ادعای شما میکنه برمیگرده به شک در مخصوص اولی که که این آورده نه در روایات ما موجوده نه در فتابای آثار موجوده حتی در تفاوای شکل در نهای هم نیست این نهای تقریبا فقط منصوصه تقریبا معظم بالای اجازه شده منصوص اساسا در خود شیعه هم موجود نیست عدد مخصوص علما تالیه به قبول شده ادعا میکنه علامه ایشون رو ببینیم چه احتمال ترفیذی داریم که امام معصوم گیرته تاریخش معلوم سیرش معلوم تمام جهاتش معلوم چه شبهه ترفیذی دارش پیدا نمیشه یعنی اینکه احتمال ترفیذی شبهه‌ای نیست این ترفیذی داره شب علایق الهی کار رو که انداوشون چه در محور اجتماع چه در, در انصافاً یعنی پالایش به تحریر به تفحوز به حرکت فکری جدیدی رو درشی ایجار کنش از با خب همه جا کم و زیادی هست من انا باید اون قسمتش می اصل این کار کارت بود و روی اجماعات علامه هم دعدیقات ادعای اعتماد کردن چون که بازه علامه ادعای اعتماد کرده این هست در میان و علامه هم ادعای اعتماد نکردن بخواب بگرم این حرکت علمی از زبان ایشان شروع شد. ما به طور کلی اگر بخوایم بعد از علامه رو تصویر بکنیم به طور کجاست تصویر کلی است و که این حرکت رو بخواهیم تصویر این اینطوره حرکت از قبلا هم بود بعد از علامه یه شدت به خاطر دین اسلام ما دو بخش داریم یکی بخش روایت فرماشه جمهور قوی از هست فتوای مشهور هست یا جمهور تفاوت با یه بخش هم خود بوده. که مضمون خبر باشه ما کلا دو بخش داریم یکی خودِ روایت خبر یکی مضمونش خب پیچیده‌اش این دو تا در هر دو مورد ما سه نهو شواهد می‌شیم اقامه بکنیم که البته این مبحث در کل علم منقول به حساب وسیشنال فاسیتهال ما در شراخ منقولمون عادتاً به این سه شواهد مراجعه کنیم. یکی شواهد عمومی و حلاثی. یکی شواهد دینی یعنی محخوض از کتاب و روایات و روات رسول الله و اونی که بین موسیقی ها جا رفت ده یکی شواهد مذهبی اونی که بین شیعه جا و این دو تا شد سه تا شد شو. دینی و شواهد مذهبی هر سه تا هم در دو موقع یکی خبر یکی خبر و مزموم. در حقیقت میشه این رو تحبیل کرد عملی که علمای ما انجام دادن در این ش... یعنی تقریبا این شش مورده راهی که رفته شده این راهه یعنی دست دادن یا به شواهد اوحلایی یا به شواهد دینی یا به شواهد منطری یا در خود هرم یا در مزمونت هرم این که شما الان بخواهیم وارده اجتهاد بشین همین اول داریم که راه روشون راهش اینه که در این تا شاهد باید چی کار مثلا مرمومه سید مارسزا توضیحاتیشم صادقا از عرض این کنیم به شواهل خبر مراجعه نبکنیم این که میاد خبر باقید باشیشون حجم نید خودش که درگیر خبر نید این که مالا خبر و فتوا میگی دنبال فتوا نه در فتوا تا حدی شواهد شواردی قبول میکنه تا هر شواهد شواردی و هیم مذهب مطلب شوارد, شوارد سالیه است این همونی تره. تره همون که یکیم یه دید نه جمع مطلبه ال ایوان کتاب جمع همون شواهد مذهب در مضمون یعنی میگیم این نه حرف خلاقیه به قبول شده ما قبول کردیم روشن شد که حرف میکنم اما مثلا هست که سی... یونسیب نردرحمن از یونسیب نردرحمن نرم شده که ظاهر کافی هم فره هم چون کافی در کتاب بود علم و جهب بابی داره شواهد کتاب از سنن مرحوم یونسیب نردرحمن خبر و رو, رو سیغه نرمی کرد قبول نمیگه میگو باید شواهد کتاب از سنن نداشت این اگر در این تقسیم بندی خودمون با جا میشه فتوایی نظر رحمان شواهد در طبق نه در فتوا لیکن شواهد رو با بیشتر شواهد دینی حساب کرده نه شواهد برس این میگه شواهد کتاب و سنت هست این شواهد دینی هست البته شواهد دینی که کتاب و سنت باشه ممکن است ناظر باشه به اینکه این خبر این درست کده قبولش دارم ممکن است ناظر این باشه که این مضمون رو من قبول درم یکی مضمون نیات شواهد تو عبارات روایاتی که ما مجموعه هست یونس داریم هر دو دیده میشه دقیقا هم نمیدوریم هم توزیهشم نو بحث سنین جاشم ینجا نیست به یونس و شاد ایشان یه بحثای تاریخي ور جال و هدیث و, و فهرستی سنگین هست که جاش یه اینم را به این مدنم اهل سنت چرا گردم اهل سنت رفتن رو شواهد خبر اون اونم شواهد دینی نمازمون اونم شواهل گفتم خدا فرمزه از اینجا از اینجا اگر آدل مطلبی گفت ما تعبدن قبول میکنیم بخواد حسوبی یاد نیاد بخواد قابل قبول باشی یا نه دیشون، تو مساله عبایدی مهم مثلا میگن خدا جس نیست اما reward داره نماز اگور داره که حافظ جهنم که به شدت میگه خدا خاص تو جهنم می‌ذاره خدا خیلی داره اوج لنفیه خدا خاص فتهول زق کافر یه بحث خب اینا مدن گفتن که خدا که خاص نداره این شو خاص میگن چون روایت اومده تعبد می‌کنیم لا نو تعبد بر و مضمون خبرم تعقل نمی‌کنه و مزمون غیبا محبوبی مزمونش هم نمی کنم خدا پاداره یعنی چه نمی اما چون ربایت آمده قبول می کنم این رو ما تصنیفی که بنده کردن توی شواهد خبر در به اصلا شواهد دینی یعنی نه شواهد اقلالی یعنی تذیرش خبر بر اساس ادالت راوی برقه ما بلن حتی می شده نتیجه این مطلب این شده که ارسال اده است خطای بسیار شاذه رو بده. مشکل نداره. چون هر چیزی به خدا برسه. چون چون به دیاس و اشتهاد و اشباح این چیزا میتواد نداری و هر خبرم صحیح باد باشه. اگر خبرم سعی نبود قبول نداره. بلاغه ما کردن. واسه اینکه معنی و فاک میتونه استنادر جایز بده. الاطریدی. برای مثلا لباس حبی قائل میشه الا. یعنی خطاوی شاذه‌ای که عین امر مسلمین هست. ایشون داره مثلا کسی شراب با نماز چه ساموزه قضا رو کنه داره که نشتر درسته مثلا لنطابل صلاح تو عربه. این لنطابل اینه قضا نماز چه, رو چه؟ میگه خب معنی ها داریم یه خب معنی ها رو, معنی رو ما قبول بریم بله ما و این بیشتر اون شبازه دینی اسمش رو بذاشتیم مثلا استاد مرموم اصطاب خبر سقه رو و این تصمیفی که ما شرگیم این حد نفرمونده این حدی که تصمیفی که من عرض کردم این تصمیفی که خود من درمز کردم بلی که کلمات بزرگان رو راحت بسنگید و تصمیم گیریشون راحت باشه ما معتقل مرموم استاد در غیقه توی وقت خبر دنبال شواهد اوغلایی بودن در خبر نه در مزمون شواهد اوغلایی درم چرا؟ چون ایشون بگه اوغلا خبر سقه رو رو جفت میدونن شارن امزای کرده خبر سقه نه خبر عهد اگر خبر عهد میفرد هم دفت اسمشی شواهد دینی گذاشتی و حسین همه خبر سقه و اوغلایی رو دارن اسمشی شواهد و اوغلایی ولی لذاب به احتمال دستیارداری میشه کلام ایشون رو در مابل اجماع هم همینجور معنا رو کنی. ایشون هم در مابل اجماع تسالم رو رو جفت میدونن به نظر ایشون به نظر او قرار تصalon تحیئات ها کاشف از قول امام اون تلطیفی کردن مشخصه به, به نظر نظر ما مثلا ایشون توضیح نداد خود ایشون نگاه کنید خودش این تحریفی است که بنده دارم عرض کنم ولی این تحلیل ما این دو برنا با هم هم خالی دارند خیلی خوب با هم, هم خالی دارند یکی معنای ایشون در طبع یکی هم معنای ایشون در اجماع همخانیش در اینه که در هر دویشون به شماد اوالایی برگشتن در خبر به شماد اوالایی برگشتن کاری به موافقت کتاب و سنت و فتحای اصحاب و اعراض اصحاب و اون این قسمتان را محبه نکرد این من چند مبانی افراد رو میگم که در روشن بشه این در حقیقت هم در اکیما و هم در اصلاح مسئله اجماع و خبر در همچون اکثر در شیعه این دو تا هم میشه هم اجماع و خبر هم دوشه مثل سنی ها نیست در اهل سنت اجماع با قیاس هم دوشه نه با خبر اجماع با قیاسه در مذاهب شیعه اجماع با خبر هم دوشه هر دو کاشف از سنت پس سوی مبنای مرموم من یکی برزی مبانی مهم رو قدمتون ارز بکنم روی مبنای استاد اصطا الله نفسه ایشون برگشتن به شواهد اغلایی و در خبر به همچنین به شواهد اغلایی در باب اجماع اسمشه تسالم قطعی با داشته <تصح> <تصح> <تصح> یعنی اگر قطعا اصحاب ما و یک مسئله قطعا اتفاق کردن این کاش بر قدر مغلله این معنای مثلا ادهه از علماء ما از امسال زمان شیعه اول و خبر صحیح رو قبول کردن لکن با اعراض اصحاب نه خبر ضعیف قبول کردن با خبر اصحاب نه اینا در حقیقت به دو تا شاهد برگشتن یکی شواهد چون خبر صحیح خبر هر دیگه یکی هم شواهد مذهبی بگر اگر اعراض کردن شواهد مذهبی این خبر رو تایید نمیکنه. و چون گفت بهقول رو از نتیجه تابعه اخرسته مقدماته در حقیقت ترجیح پیش اینها با شواهد مذهبیه بگر فرقشون با مثل مرحوم سید مرزدان اینه خوشمگیر سید مرزدان خبر بارد قبول که برای خبر صحیح که عمل نشه قبول فرقشون اینه که اینها مثل مرحوم نایناییم هر شده. اینها در مرحله خبر با شواهد مذهبی قبول میکنن سید مرتزا خبر رو در هیچ مرحله قبول نمیکرد. تو مرحله مضمون و فتوا با شواهد مذهبی قبول میکن بگرد چ شد پس مرحوم نالینی ولو بیه گهتی شبیه سید مرتزاز فرد بکن اینه مرحوم نالینی خبر رو به عنوان یک دری لحظی قبول میکنه البته با شواهد مذهبی یعنی عمل اصخاب و اراز اصخاب روشنگی؟ اما مرحومی سید اموزا سبر رو به هیچ نه هم قبول نکنه حتی باشه آقاده بزنگی اون روی که قبول میکنه ترتباست ترتبایی شده به این تو ولی ولذا مرحومه نائمی یا مرحومه حتی شیخ انسایی شیخ انسایی مبنش اینا میان یا شهیدستانی در دیارتی ها پس تناوریم معلوم شد که مثلا در بحث شهرت اده از علمای ما شهرت رو قبول می کنن شهرت بحث بعدت بعد از بعد اجماع شهرت شهرت رو طبق این قیاسی طبق این قاعده ای که ما اعنس کردید شهرت در می به مسئله مضمون نه با مسئله و تریه و خبر به مسئله مضمون لکه با شواهد مذهبی از مذهبی ناقص شهرت اینه اکثر مثلا 90 دسته 80 دسته دو علما قارشه ازدهی شهر از فتواهی قبول کردن یعنی سی شهر فتواهی قبول کردن یعنی گفتن ما توانیم احکام شیعه را استظهار بکنیم از فتواهی مشهور شواهد شما چه شواهد ما شواهد مذهبیه چون این فتواه را زیادی از فقاها دادن این برای ما که به این حکم داردن پس شعرت فتوایی هم که در آینده خادامه هم این هم برمیگرده به مضمون به لحاظ ملخلی به نظر من دیگه روشن شد بعضی هم خب میدونی که الان یه خدا این که مثلا سبر رو قبول نکنم مضمون رو قبول بکنم به شواهد و غلائی باست امروی این مطلب درسته درسته این درست چیزی و رد و تا و ردیه نمیتا سیتارات سعی انداشت تو هیچ چیز امکان نداره مثلا شفق غلره امکان نداره فرام چیز امکان نداره, نداره مثلا امکان ال ای اخرگی اینا کسانی هستن که بر می‌گردن به شرف همین بحث مکاسب مطرح داشتن خب به قول تخرازی اامه خود علمای اسلام عین رو قبول کردن از ابوحاشم جو با ایسافه پسرش نه هم بکنه قبول نذاشتن عین حقیقت خود این نیستی خب با اینکه خود اونها روازه سه ها زیاد دار. کسانی که این راه رفتن که اصطلاحای داری وقت از اونها به اقلیگرها تعبیر میشه اینها در حقیقت الان تو زمان ما همزالله زیاد شده همیشه بوده نه این کلام اینها در حقیقت چه کار میکنن خبر رو الگاه میکنن به مضمون برمیگردن در شواهد اقلالی نه شواهد دیمی نه شواهد مذهبی روشن استید؟ تصور مطلب رو می پس که خبر شد یکی مضمون شد سه نحو شاهد شد این سر اختلاف علمام از همینجا طبیعتم اون اصلا آقای که داری مبناز و محبوم ناینه در در نصال شفتشون هم فهم نا این طبیعی است یه فیل نه خود محبوم ناینه نه آزیا این تحیل که من امروز بوده ارزم کنم ایش که من این تحلیل خود من نسام. و استزهایی تا است ما برای کلاهاش می‌دیم همیشه ما در مبانی علم اینجوریه چهار مرحله رو مد نظر داریم حالا اگه تفصیل نکنیم گفت مقدمات مسئله یکی بیان که مسلک این آچیست مراد این یکی تحلیل که این به کجا برمیگرده سوم نقد آیا این نظریه میشه قبول کرد یا یعنی نه چهارم اختیار اصولا طبیعتاً کار ما همیشه این 4 الان اون تو مسئله تهدید هستیم تو پس بعد از علامه هم در بحث خبر هم در بحث اجماع و عمل از هم انصافاً در فکر شیعه کردیم که در آن و تهاجم سود را آورد. صحبت ایثار دادیشون متوقف نبود. از چگونگی زمان و یه مقدارم یه حسونه. من کنده اصولش اصول احافه آن اصول هم دیدن این منشاء این شد در دنیایشیه و مبانی رو هم براتون عرض کردین اگر بخواهیم تحلیل بکنین کلیه مبانی چه به لحاظ خبر و چه به لحاظ اجماع و اتفاق این شیشتا نکته رو داره راجع به خبر شواهد اغلایی شواهد دینی و شواهد مذهبی راجع به مضمون هم شواهد اغلایی ما به خبر کار نداری آیا این شواهد اغلایی من میکنه بجای اونطا انا اینکه اعاده شنال مسلمانان مثلا این در که علاوه بر مؤمن این چون مثلا داره که از ایمان اون بنی علی ارغداه میگن زمان علی نار چون زمان هم کسره ادب به کار بردن چون خود عدد احاطه انسان رو اشار نشون میده مثلا اگه بپرسن که از شما الان مفاهرات چند تا چون این لفظی که اجبارن مفاهرات و دیگه ممکن از ادب اندی و دست رو می و بدی شو توزه نمی‌آید یعنی این حالی رو مؤمنین در موارد یعنی و عدد عورده استخفار سطح عوامل داره کفن و چهار داره ایمان این عدد اون زمان نمیخوره یعنی شاهد مضمونی رو کافی دیگه میدونن یعنی این مال اون زمان نیست این مال زمان نیست که حافظی به علوم پیدا شده دست بندی شده این مال زمان علیه این عقیق سالمید نشده اندرسان چاپ این شده باشه. و من الان کلا فرقی البته این بوده که علماء اهل یعنی سنت که قائل به شواهد دینی هستن و جزخبر هم باز هم در ادری از جیه ها سر کردن به شواهد و اغلالی مراجعه بکنن این نیست که آلوان شواهد دینی سر در چون بحث ها داشتن خبر صفات مختلفی داشت متن خبر مشکلاتی داشت حمده لذا یک مقدار شواهد و اما ریشه و زیر شواهد دینیه اون وقت شواهد دینی اگر در خبر باشه مراد بجرد خبر عرضه شواهد دینی اگر در مضمون باشه مراد موافقت کتاب و سنته ما به دنبال موافقت کتاب و سنت هستم به دنبال موافقت کتاب و سنت دو جور مطره یکی در خود خبر ما خبر رو قبول می که مطابق با کتاب و است این میشه شواهد دیمی در خبر اما موافقه نیست یکی هم در مضمون مضمونی رو قبول می کنیم که موافقه با کتاب و به است قبول نمی کنیم این همرا شش شاهد رو من مثال های خدمتتون زدن و این که ما البته باید... اگر شما اضافه بر این دو تا یعنی خبر به لحاظ سلورش و مضمونش اگر متن رو هم اضافه بکنید دیگه باز نه میشه چون اگر بحث متن هم پیش بکشید اون هم شواهد اغلایی داره شواهد دینی داره و شواهد مذهبی داره خود متن که آیا متن قبول بکنی <تصفح> یا متن قبول نکنی چون گذشتگان ما روی متن کار نکردن از کم تسابه نیست ممکن است که تیگه نه تسابه نه تسابه نیست زیر بنای اگر بود خود محض رو هم اضافه کنی سفه شاهزی مجموعاً نفه شاهز میشه نه میگه من خبر رو قبول کنم به عنوان خبر بعض درسته میگه نه من خبر کن این مزمون در کتاب و سنت هست اون خواهد خبر وجد باشه من. اون وقتی خبر رو با متعدد کتاب و سنت دی من خبر به عنوان ایک دعی لحظیست به اطلاق شماست رو به عنوان شماست به عنوان دعی همه اگر مزمون رودی دید در این لبی میشه فرق بین خبر خبر مزمون اینه هر جا بگیم خبر رو دید میشه در این لبیه. اگر مزمون دید میشه در لبی چون اون به الفاظ خبر فرق این حرف داره بگیم حرک داره ولی روی این تفکر و مزمون وجود التزام به طبع در حجیه چیلی راحته. ممکنه یه خبر سه تا مزمون داشته باشه سه قسمت باشه یه قسمتش فتازا، یه قسمتش مختلفه، یه قسمتش هم فرق کننده. بگیم هیچ مشکلی در اون نیست که فتازام با اون فتاو اون بچون که اولا عمل نیست. این دیگه دنبال خبر نیست، کار نداره نمیاد بگه این کلام از امامش تو میشه تو خدمت بشیم. بخاطر اون اصلا کار دیگه به کلام و اسنادش به امام نده، اون فقط نگاه میکنه مثلاً تبعاظ در حجج که راحت میشه، هیچ مشکل نداره. چون دنبال مضمون، خوشون این خبر واحد شده از ما مسئله بیه که خلاب خودشی است صدر خبر مثلا زیدک معرض عنها چون چیکارش بکنه روی این مبانی هیچ مشکل نده بله کسی میگه خبر واحد حجته اون دارد به نظر من فکر میکنم با این توضیحاتی که من خدمت ارسلان خدم و با این تحلیلی که حالا به ذهن خود بنده رسید خیلی واضح میشه نقشی رو که داشت و اختلاف آراء علمای ما خلاصش اینه ازده دنبال شواهد مذهبی بیشتر رفتن چه در اهماش در خبر بیشتر علمان بعد از علامه دنبال این هستند. اما شواهد اغلایی مثل مرحوم استاد یا شواهد دینی مثل اونجه خبر صریف قد این در اصحاب ما کمه هست ما کم. انصافه بیشتر اینجا خیزمتی که علما از زمانه علامتا این لحظه یکی ای من در خدمتان رستن روی شواهد مرتبی رفتن خب این به تحلیل میمونه نقض که دلیلش چیه چون در بحث خبر باهدی صحبت ها خواهد شد بحث میمونه بحث اختیار خود ما خود من اعتمادت میره که باید مجموعی شواهد دراجعه یعنی اگر ما به خواهدی در کافی پیدا بکنیم چه از نظر عقلاوی چه از دینی و چه از نظر به حساب مذهبی این که متن خبر ثابته قطعاً مقدم بر, بر اینکه خبر ثابته بر مرحله مضمون مقدم و طبعا اگر شواهد عقلاوی یک طرف باشه و شواهد مذهبی این رو دیواد مقایسه کنیم به مواردش تیمشیم جزمان حکم بکنیم کدومی مقدمه که شواهد عقلاوی مقدمه و شواهد در این که پای اعتراض مثلا اعتراضات اصحاب کاسره یا عمل اصحاب یابره ما به طور کلی گفتیم حکم چون این قصه واقعیت خارجی داره ماوازش فرم می‌کنه ما رجوع به مجموعه شواهد می‌کنیم با مجموعه شواهد قبول می‌کنیم کما اینکه شواهد متن رو هم اضافه می‌کنیم یعنی اضافه بر سدود روی خود متن خیلی کار نمی‌کنه و بعدا روی مضمون و خطایی که داده میشه یعنی مؤثری دید که باید مجموعه چون وضع فقهی نیتروری شیعه یک خساراتی در تفهش داری که حالا این در بحث حجزه خبر و تاریخ حجزه خبر ان عرض میکنی. یک وضعی داره که اینجور اختصار می‌کنه درحال به طور طبیعی شواهد مذهبی در شیعه به خاطر که همه در تقیه بودن اجمالا خیلی از آثار ما از بین رفته خیلی از مسائل در بین فقها به اصطلاح سیره سیره نحسوده خصوصا که پیش اومده ما فساد عددی نداشتیم فساد عددی ما لحظه سنده بوده یک عوامل خارجی سبب شده که میراث های شیع های مذهبیش بیشتر باشه یکی از عدله مثل معمونای ما این که بیشتر به شواهد مذهبی برگشتن راسته اما این اطلاق نداره عمومیت نداره به طور طبیعی شواهد مذهبی پیش ما نهچه قوی بازید یه مشکل استنباط همین دیگه خب ما اصلا معتاد مسائل و اصول اینطور نیست که مثل قضای حقیقیه و شوال اون حالا اعتبار ما این قضیه همون اصطلاح معطلیه چیزیه فقط بس ما بیشتر ما غذا خارجیه میشوره این که اراض جابریه نه خب از زن هشتم فزاش خود خب. دیگه با دنبال عوامش میگردیم این چیزی نه از جابره جابره. قاسر یا قاسر. عمل جابره. چون در مقام عمل پیدا شد میگیم جوابش هم تو مقام عمل مواد شرم میکنه نبیسونیم دورا دور الان یک حکم واحدی رو بکنیم بگیم حتما شواهد و اغلایی میشه آیا خویی شواهد و رو به لحاظ صدور بر همه میکرمونه قبوله مبنیشان اینه اما اصلافا نمیشه اثبات کرد با شیعه نمیشه اثبات کرد حتی با سنیا نمیشه اثبات کرد چ خاطر که در میان اهل سنت سرعی در این بوده که شد و کتابت نشه و حفظ باشه این حفظ مشکلزار میگهن. ما الان وقتی مراجعه میکنیم در کنیمیم که ک به 0 حد صاهه سند یه نقل بهو نفر که نقل ونا جایز نیست. معزممشون به است یکی کهدا هم میگه نقل ونا جایزه اون نقل ماات پا را خراب یکی از مشکلات کاررس میکنه. ما هم در میانشی اتفاقیی است که ن من جا تو دو دراز ما میگه رو به ما اصم آمین کرد حدیث و ازید معنا همه کنش خب با اینکه این تویید المعنا فهم محمد نوسل به خالت میکنه یه مقدار به لحاظ خبری مشکلی ایجار میکنه وقتی نوشتار نباشه در میان نهر سنت وقتی نقل معنا جایز باشه در میان خواهی نخواهی با مشکل وقت شیعه به مشکلات تقییه خود احمله در تقییه در خود شیعه در قلعه بودن مسادرشون کم بود افراد مثلا در نهر سنه ما از محدثیرشون داریم که دا میادن بردار. چهه هزار نفر که منبر شش برای سماه حدیث تو ایک ما معروف ترین کتاب های شیعه داریم مثل کتاب و حدیث که رفنیه سلاتون کتاب و صلاته نبیدن راویهاش کلن چانم ها یک خرم نفر کل کتاب و اصلا عدد کل سخت ما در روا دهنه سنت تا 70000 هم در نمیشد که وقتی بغداد آمد نه 70000 ای که بعضی ها تشریفش که میگن که وقتی جمعیت میرم میان اون مکان را اندازه گیری میکردن، مرسی مثل میکردن مثلا از این وقت اونجوری که شده بود نه اجازه گیری میکنن برای هر مرسی هم دو نفر وقتی گفتن این اسمش این هر عربی خزر مکان های حوتی و ذء اخترا زه و را فرض و گورنهای تخمیم تقلیم. و فرض با فرض میگفتن اینجا حوضه هفتا نفر آدم نشست که بوده تعمالی؟ ما شنچی داریم و لذا خواهی نخواهی چی میشه پیش ما شباهز مذتبی نفر بالای بازی میکنه م... محیط داشتن دیگه. اصلا این که اینجا میشه رو خواسته ده نتر یکی میسته ده نتر یکی ده نتر یکی اینجا حد رو کلم اونگو حیا تنا اونگو حد بولان اونگو چنجور بولان رو آ سالی اصلا دیگه اون که فرض سوسی است فرض بوس بود مثلا جدی بزرگی خب بزرگ الان هر اثر بوساریه گفت بحث تاغ کثافت که بزرگی خب اثرات ولی من ندیدم تو سری که دقت می‌فرمایید چه این هر مرحوم نایری و هر بزرگانی که بعد از اننامه آمدن اینا در حیرت این بود که طبیعت شیعی یک نوع در خودش رو بود نمیتونیم ما خیلی با شواهد و آما اغلایی حلش بکنیم وقتی یک کتاب که رخم سه سنفر نرم کرده. ما نمیتونیم خیلی با شواهد و اغلایی نرمه حلش بکنیم بیشتر بازه اگر میشه آدم مصالی باستم هست انصاف هم مثلا درست ما یه قبول داریم. یعنی این زیر این که رضا از خدم از زمان علام به بعد هست شواهد مذهبی همیشه بوده مجموعه افرادی مثل کوی که دنبال خبر باشند یا مثل مرموساق مداره که دنبال خبر سهی باشند لیست الله کمن و با مشکل در فرق رو بود این صاحبا این افراد خیلی کمن. و مجموعه شواهد مذهبی چه در بخش خبر و چه در بخش فتوا و مضمون انصافاً قدید بوده اما سن کردم در بخش خبر، شواهد مذهبی در زمان مثل صدوق اصول و مصنفات بوده از زمان از بعد عمل بوده حساب عمل دقت کنید. اختراف در این بوده که شواهد چیه مرحوم شیخ صدوق روی در اصول از باشه این شواهد مردحبی روشن شد. الان با شواهد مذهبی با احمدی به خبر میگیریم این زمان عوض شده این قبول دارن و که روح تحریه شیعه و اون روح تحریه نخواهی شیعه اینه که انصافا ما در شیعه این واقعیت دارم این شیعه واقعیت به چشم کچه رو کنیم. تو تمام ما خودمون، حتی در رجالم حتی در بخستم انصافا به شواهد مذهبی خیلی بازه اتناب رو کنیم این شیعه این درست مطلب اما خیلی جام شواهد و عقاید کارسازه اینطور نیست که دلاره قرار بزنه اما شواهد مذهبی به طور کلی چه در طرز در مضمون خیلی کارسازه به توی شیعه به خصوص تو هنفی های طور نیست تو هم شیعه های طور نیست این شیعه اینطور نگاله بعد از هر ما و تاریخ مذهب و ما این خصوصیت رو ایجاد کرده می دونید روشن بشه فرض دارید انشاءالله تا کرد. دی فرضش که برای یه وقتش قرار یه چیزی